با خدمت بینندگان گرامی بخش سوم زندگانی کسروی رو شروع میکنم من در بخش قبلی بیان کردم که تنها زندگانی کسروی رو خدمتتون عرض مخوام کرد بلکه در کنار کسروی هر ای که مربوط به تاریخ زندگانیم بود تاریخ ممریکت ما بود که مربوط به تاریخ زندگانیشون بود و در این باره هم به طور خلاصه حضورتون اشاره خواهم کرد تا احتمالاً بینندگان جوانی که مطالعه کافی در این مورد ندارن یه گوشه ای از تاریخ امریکت رو هم باز میتونن بدونن در بخش قبلی به صلاح صحبت تا که در روزهایی که در تبریز کشت و بود، روزها قوای خالدر روسیه در شهر اون کسایی که تفنگ گرفته بودند بر علیه نظامیانشون دونه دونه شناسایی می‌کردند، می‌کردند. در باغ شمال که مرکز نظامیانشون بود، به دارها آماده کرده بودند، هر روز ده نفر، 15 نفر، 20 نفر، چهار نفر رو به دار می‌کشتن و در به شهر هم سمت خان شجاع دوله حاکم شهر اون هم از طرفی افراد رو میشناسه و به دولت روسیه به نظامیان روسیه تحویل میده از طرف دیگه گروه دیگرم خودش میگیره انتقام شخصی میگیره و اونا رو خودش میکشه دستور میده خفشون میکنن سرشون میبرن و آخرین بیان اینجوری شد که در آن روزهای سیاه تبریز که سمدخان شجاع دوله حاکم شهر و از سر بست اشغالگر روس روز هر روز ده تن از مردم آزادی خواهد شهر را اعدام میکرد آنان در خفا مجلس میاراستن و در سود آزادی بر رفته ماتم میگرفتن خدمت و که قبل از این بنده ادامه این عرایزم رو داشته باشم یه مطلبی در این مدت پیش اومده که من مربوط میشه به بحث کستوی ما مطلبی پیش اومده در مملکت پاکستان که تشابه زیادی با قتل کستوی داره حضورت هست که در سلون دادگاه پیشاور پاکستان فردی از تشکل اسلامی موسوم به احمدییه که به اتهام کفرگویی در جلسه دادگاه به اعتبار قانونی بسیار اتجاهی به نام قانون مقابله با کفرگویی محاکمه میشد از سوی جوانی باشلی که چند گلوله به جمجمه اش به رسید و جالبه در دادگاه در حوزه در, در حال در حالت به اصطلاح محاکمه شدن یکی دیگه با گلونه اینو میزنه و به چه بهانه این آدم رو محاکمه میکنن مقابله با کفتوی کموبی شبیه به این مطلب ملایان ماست که مردم رو فتوا میدادن حج میدادن تا مردم رو بکشن خب مطلبی که هست میگه این آقا رو وقتی که نکلانکری میبریم می اونجا صحبت میکنه میگه که شب پیغمبر اسلام آمد به خواب بنده از من خواست که من صبح برم این کافر رو بکشم حتی که ما میدونیم که در اوائل اسلام محدودم فراوان بوده حتی به دستور خوده یکم برای اسلام هم انجام گرفته ولی شما قرن فعلی رو در نظر بگیرید این دین تکون نخورده این دین اصلا نتونسته خودش رو با زمان بسازه مردم رو میکشن صرفاً به دلیل اینکه مثل اینا فکر نمی کنه مثل اینا دینشون مثل اینا نیست. کشته بشه و هر حال جالب هم اینجاست که گروهی از نمایندگان مجلسشون هم کار این بود. جوان باطل رو تأیید کردن باز کار میکنم این مطالب باید همیشه تکرار بشه سال در تاریخ همون طور که کردم بخش اول در تاریخ بیستومه اسفند هزار ساعت صبح کسری رو کشتم. در بعد از آن روز حزب توده برای خاک سپاری یکی از اعضای خودش که مدعی بود به نام شبستری که می که روزنامه فروشه بیس هزار نفر رو به خیابان‌ها ریختن تا اون رو خاک سپاری کنن یک واجه راجع به قتل کست این قتل نایزا انصافانه جواب داده نشد حالا روزنامه ها هم نوشته بودن ولی ممکنه گروهی بگن که این در اون تاریخ سران حزب توده از این قتل آقا نبودن فردا بعد از زهرم بیس هزار نفر در جلوی میدان بخارستان جلوی مجلس شورای ملی. از همین تودهی ها جمع شده بودن در اون تاریخ روز آخر مجلس بود بیسی که اسفان قبام سلطده هم از روزیه برگشته بود پس از دیدار با استلی قرار بود در آخرین روز بره مزارش مسافرتش رو به مجلس بده همون میدان بازم 20000 هزار نفر جمعیت تودهی در اونجا جمع شده بودن تودهی یهزم پادیزانش بزرگ علوی میگن مدتهای طولانی ضبط کرد میدونیم که بزرگ علوی هم او نشریات حزب توده بود و نشریات هم نوشته بودن در این مدت طولانی یک واژه راجع به این قتل ناسابانه نگفتن اینا مساخن در اینجاست که واقعا اینا میخواستن به که فراموشی گرد فراموشی به این قتل کستوی میگذرم ارز کردم در اون تاریخ که در خانه نشسته بود مطالعه کرد از ملاید دست فرداشته بود خب طبیعتا که از تنگ دستی یکش رو گرفته بود تا اون تاریخ کستوی ملا بود و تا اون زمانی که ملا بود درامدش از اون طریق بود حالا لباس گرشته کنار اومده نشسته کنه دیگه درامدی نداره چه کار باید میکنه اول کاری که کرد میگه که میفرستادم کتاب رو دونه دونه کتاب روشی میفروخت و پولشو به من میداد تا اون تاریخ مقدار زیادی کتاب جمع کرده بود با اون علاقهی که به کتابونه رشتار داشت خودش در این باره که یک سونیست و و بی, و بی مرا فشار سختی میداد چون کاری نمیداشتم پولی به دستم نمیرسید در حکم زندگانی آسان می بود. با این حال ما در تنگ دستی افتاده با سختی می در آن چند سال که های بسیار گرد آورده بودم. در این هنگام آنها را میفروختم کتاب فروشی از راز ما آگاه می بود. کتابها را می‌فرستادم، میفروخت و پولش می‌داد. داد. دوتن از دوستان پدرم حاج محمد جعفر بادامچی و حاج حسین بادامچی که از آزادی خواهان نیز می بودن. هم بار پول برای من پرستادم. حاج عباس نامی که یکی از افراد خیر فامیلش بوده کمک های فراوانیید به ص اون تاریخ تنگ دستی به کرده بود. ولی برای کسوی که نفرت داره از انسانهای که به امد کار نمیکنن میخوان بدون کار پول بخ... نان بخورند، کس روی خواهی رسید از این که آدمان خوشش نمیمد. خودش نمی خودش نمی تحمل بکنه که بیکار بشینه دیگران کمکش کنن بنابراین به توصیه گروهی از اطرافیان تصمیم گرفتی کتابهایش رو یک جا بفروشه یک دستگاه ماشین جراب بافی به بیاره تا معیشتش رو بگذرون می‌بود. بود در اون وقایع یا دستگاه ماشین کوچیکی بود، فردی که هر کس می‌تونه جوراب به بافه با اون ماشین بفرسته، بفروشه و زندگیش رو میاره و در اون فرصتی که قرار بود این ماشین سفارش داده شده بود، برگرده شروع می‌کنه این عمل رو یاد گرفتن. ماشین از راه میرسه، کسبیام مخروز شده، کسبی از دستش نمیاد، بلد نیست کارو بکنه، در نتیجه ورمیونه. برزیاد ماشین رو به گروه بر و باز هم دست کسبی به خالی میشه خالی میفته خب چه کار باید کنه در سال 1294 سه سال دیگه هم گذاشته 1294 کسبی 25 سالشه بلاخره توانست در این سنو سال یک کار نسبتاً مناسبی برای خودش بیدها بکنه مدرسه ای به نام مدرسه آمریکایی ها بر تبلیس ادامه داشت تا زمان ما هم بود در تبلیس در آنجا کس را رو برای تدریس زبان عربی استخدام می کنند به صلاح بخش های گذشته عرض که کس زبان عربی رو به صورت امقی به صورت گسترده یاد گرفته و قرآن رو چند بار خونده بود و مغلای قرآن رو خونده بودید این مدرسه که از سویل معلم عربی استخدام میکنه و گشایشی در زندگیش پیش میاد و نفس راحتی به قول ما میکشه و در اونجا به کار مشغول میشه ولی در این حال در همون مدرسه زبان انگلیسی رو میخونه و زبان استرانتومی رو در اونجا می‌خونه. یعنی در هم همزمان که تدریس میکنه درس زبان انگلیسی و زبان اسپرانتو هم مطالعه میکنه میخونه و خواهیم دید که این زبان انگلیسی در آینده به کمک زیادی به این شخص کرده بود خب بنابراین حالا که از روی شده 25 سال وارد زندگانی بزرگ سالی کستنی می از تاریخ ببینیم کستنی حالا که کار پیدا کرده چه کار کرد کجا میره کار زندگیش به کجا رسید مسئله خیلی روشن بود ملایان بسپر نمی داشتن چه افتاده بود در محله م... مثلا حکمواش جسراحتان در محلات دیگه کسانی که کسری رو میشناختن که کسری شده مدل شده لیدین رفته مدرسه آمریکایو معلومه که آمریکایو زبان انگلیسی هم میخونه از جتشو میکردند اروا افهام ها رو از کردم داشتن میگفتن اهالی مکه مح... هم باز ازیتیش میکردند ناراحتیش میکردند تا کسری به جان یا از این مسئله در تاریخ 11 تیره 1295 تصمیم بگیره قبلا که نمونه در این محله نمانه ولی چه خواهر کنه خانوادهش در اونجا بود زندگی خالیش در بالاخره در 11 تیر ماه 1295 کس به مقصد کفلیس از تبلیز حرکت میکنه خب این رو اشاره کنم اضافه کنم که پس از جنگهای ایران و روس و خرارداد های و جدا شدن مناطق فراوانی هفته منطقه از پیکر کشور ما اون طرف رودخانه عرس حکومت مملکت بیشرفته بود و خار فراوان بود و در این طرف قهتی و بدبختی و بیماری فراوان بود به لطف حکومتگران دوره آجار و همین دلیل در این طرف بی, مول، بی پول و درمانده می شد سعی میکرد بره اون طرف و کار بگیره علا ببرین در قسمتهای تفلیس و باکو ایانیانی که حالا به ای رسیدن مثل همون طالبوف و افرادی از این قبیل و جوشن فکرن جوشن بینن آگاهن فراهونن کس طریق میگه من میرم او بر. هم کار میکنم زندگی رو تأمین میکنم شادم فکر میکرده که بعد هم خانوادرش رو بیاره بود و هم با این بزرگان دانش و علم آشنا میشم کس طبیع عاشق اینجور مساید یازده تیر هزار دویست نو پنج به مقصد تفلیس حرکت میکنه در فرصتهای یکی از مطلبی که پیش اومد می نمیسه که من در با قطار میرفتم یک سرباز روسی هم در به صلاح همون کوپه بود که فارسی هم میدونست در اون چند ساعتی که با اون سرباز روسی بوده واجه هایی به زبان فارسی از اون میپرسه تا اون جواب روسیشو بده جالب اینجاست میگه من چند واجه یاد گرفتم به طوری که وقتی از قطار پیدا پیاده شدم تونستم به روسیام بفهمونم مطلبمو بنابراین تمام زندگی به خاطر درس هایی که خونده کسدی البته یه مقدار شد بگردن خواهیم دید معلم همیشه داشت در زبان ارمنی و اوستایی اینا معلم گرفته ولی اصولاً خودش این زبان رو علوم رو به صورت خودی یاد می گرفت کسی این عدت 40 روز در قفوازی به سر میبره البته میره باکو از باکو حرکت میکنه میره مشهد بعد از مشهد بر میگرده خب اون موقع هواهل زندگیشه و معتقده آخا این دید آخر زندگیش به اسمام اعتباد داشت یه مطلب دیگه است که بعد هم میره در باکو از باکو حرکت میکنه میره در مشهد مدتی بعد بر میره تفلیس کنپنی روز اونجاست که میبینه که نه کار تونسته پیدا بکنه نه یک مرد آگاهی رو تونسته به صلاح پیدا بکنه با از اون یاد بگیره از طرف دیگر مادر فیلمار هم تلگراف زده که باید برکردی کسری یک بارن پس از چندپنی روز برمیگرده میره تبریز دوباره همون جا همون محله ای که آزارش میداد از این تاریخ بعد از این تاریخ به بعد است که زندگانی علمی فرهنگی و اجتماعی جی آ... در مورد دانشاندوزی وی باید گفت هم دور کردم و رو بدون معلم یاد گرفته بود. خودش در کتابش می که در ساعت‌های بیکاری بیکاری همچون بسیار دیگران، به خواندن کتاب یا آموختن برخی آموختنی ها می پرباختم. ببینید چه چیزهایی رو یاد گرفته اول از کتابهاش میگه بالا هم گفتیم از کتابها بیشتر تاریخ و جغرافی را دوست می داشتنیم سفرنامه ها بسیار می خاندنی. از دانشها ستاره شناسی را دوست داشته گاهی به آن می پرداختنی. چون چند ترکی و فارسی و عربی و انگلیسی و اسپرانتو می دانستم ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی زبان تازه در اون تاریخ میدانستم و از سوی در سفرها در هر کجا به یاد گرفتن نیم زبان, نیم زبان آنجا می پرداختمی چونان که مازندرانی و شوشتری و سمنانی و برخی دیگر زبانهای محلی را یاد گرفتم اینها مرا به زبان شناسی که خود یکی از دانشهاست نزدیک کرداریده که به آن پرداخته در آن میان زبان پهلوی را یاد گرفته هخامنشی یا زبان نوشته بیستون را دنبال کردند به روستایی به اوستایی به به به به نیست زمان کمی کوشیدن زبانهای کهن و نوع ارمنی را از یک آموزگار درس خواندم از این گذشته در شناسی به یک زمینه نوعی در آمدم و آن اینکه هشت هزار کمابیش نامهای شهرها و دیه ها را گرد آورده درباره آنها به جستار و رسیدگی پرداختم و میخواستم معنی نامهای شهرها را تا آنجا که میتوان از راه دانش به دست آورم. بخشه. سخنان بنده امروز هم در اینجا به پایان میرسه امیدوارم که در بخش بعدی مطالب از سبیر رو ادامه بدم. سپاس از شما